أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صيما الله في الأراضين نتدرب الى الله بحبهم والبراءه من اعدائهم السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ورحمه الله وبركاته اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله از خداوند درخواست تقوای همه جانبه بکنیم. بخواهیم که ما را با اون تقوا با ابعاد مختلفش مزین کند. چون اون تقوا آثار و برکات فراوانی دارد. از جمله داشتن بسیرت هست. چون خوب دیدن و خوب مسائل رو تحلیل کردن به خاطر است که از تقوی الهی سرچشمه میگیره نیروهای دشمن شب و روز در حال کارن با ابزار گسترده تبلیغاتی در قمغ خانه ها و خانواده ها نفوز کردن علیه نظام علیه اسلام علیه شخصیت‌ها علیه ملت کار می‌کنند برای شناسایی تبلیغات سوء آنها روش مقابله با آنها باید عنصر تقوا را در خود ایجاد کرد تقوریت نمود چون فقط انسان‌های با تقوا هستند که می‌فهمند دشمن از کدام سو نفوذ می‌کند حمله می‌کند و قرآن کریم در این باب میفرماید ان الذين الَّذِينَ تَقَوْ اِذَا مَسْتَهُمْ قَائِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُو فِي اِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ همانا متقین هنگامی که گرفتار وسوسه‌های شیطانی میشن به یاد خدا می و بی درنگ و بسیر میشن. بحث تفقیر فیرامون آیه پنجم از سوره مبارکه ممتحنه بود که حضرت ابراهیم سلام الله علیه به درگاه خدا دعا می کنند ربانا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا یعنی فروردگارا ما را ابزار فتنه برای کفار قرار نده یکی از معانی فتنه و رون نشان دادن امور و انحراف ایجاد کردن در مسیر حقایق هست و چیزی و چنین کاری در واقع این قبیل اشخاص رو ابزار فتنه قرار میده به سول کفار و بر زرر مؤمنین و امیر المؤمنین علی علیه السلام ریشه این نوع فتنه انگیزی را چنین بیان فرمودند اینما بد و الفتن احوا تتبع و احکام انتبتده خطبه پنجار همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها هواپرستی و بدعتگذاری در احکام الهیست قرآن درباره باره فتنگرانی از این دست میفرماید لقد به تقب الفتنه من قبل و لك لکل امور حتی جا الحق و ظهر الله و هم کارهون توبه چهل خداوند درباره این روش خرابکارانه منافقین میفرماید این اولین بار نیست که منافقین دنبال فتن جویی بودند و کارها رو بر تو آشفته می سازند بلکه پیش از این هم دنبال استمپاشی و تخریب افکار مردم بودند تا آنکه حق آمد و امر خدا ظاهر شد در حالی که منافقین ناخشنود بودند طبق این تفسیر برای فتنه فتنه برای وارون نشان دادن امور و تخریب افکار عمومی کاری بسیار خسارتبار و تماما به سود کفار و دشمنان است و به سود است که علیه اسلام دندان تیز کردهاند. جا دارد که مؤمنین مسلمین علاوه بر تلاش‌های همه جانبه برای مقابله با این فتنه‌گران از خدا بخواهند که ربنا لا تجعلنا فتتا للذین کفر و قردگار ما را ابزار فتن برای کفار قرار نده امروز نمونه واضح این فتنه‌گران، کراریس های تکفیری و داعشی های که به نام اسلام دست به وارونه جلو دادن اسلام در جهان زدند اینها اسلام ناب به حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم چه رحمت للعالمین است این اسلام رو اونقدر خشن و وحشی و بی‌رحم معرفی کردن که افرادی که دنبال اسلام و شناخت اسلام یا گرایش به اسلام هستند رو به اسلام ن‌یارند امروز که مسلمانان منطقه در آستانه جشن میلاد پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد با سعادت فرزند اون حضرت حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه سر میبرن و از شکست بردن دواعشیه های وهابی در ارشه نظامی خوشنودن بدانند که این شجره خبیصه ملعونه تفکرش همچنان باقیس و به شدت تبلیغ و ترویج میشه اونها برای وارون جلوه دادن اسلام رحمتون للعالمین با پشتیبانی همه جانبه امریکا و اسرائیل و صهیونیستا و مرتجعین وحابی منطقه از هیچ اقدامی تا به حال خلوگزار نکردن برابرین باید با بسیرت در برابر این تفکر کاری متناسب با خودش انجام داد پروردگارا توان ما رو در مقابل با خطنگران اخزون بفرما شرشان را به خودشان باز بگرداند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 اللهم صل و سلم على خاتم الأنبياء وأشرافهم سيدنا و محمد و آله الطاهرين. صل على مولانا علي أمير المؤمنين ورسّي رسول رب العالمين وصل على السديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وصلّ على الحسن والحسين. سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وسل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى ذد المرتضى ومحمد بن علي الجباد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة ابن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين تتقربوا الى الله بحبهم والبراءه من اعدائهم اجمعين السلام عليك يا فاطمه المعصومه يا بنت موسى بن جعفر ورحمه الله وبركاته عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله بندگان خدا خطبه شما رو در این خطبه نیز به دعایت تقوا وfast داشته این گوهر گرانبهای الهی دعوت میکنم تا تقوا سبب از بین رفتن سرخردگی و نگرانی های روحی و اجتماعی و سبب حل مشکلات اقتصادی میشه قرآن میفرماید فمن یتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب این آیه از امید بحشترین آیات قرآنی است که پرده های یعص و ناامیدی را پاره می به اهل ققوا و عده نجات و حل مشکلات را میدهد. در خطبه دوم به ذکل چند مناسبت و چند تحلیل کوتاه میپردازم. امروز جمعه دهم ده آذر و دوازده ربیع الاول طبق نقل مرهوم کلینی و مشهور از اهل سنت سال روز میلاد سراسر نور حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آلهی و سلم است. طبق روایات و نقل های دیگر روز 17 ربیع الاول مصادف با روز چهارشنبه آینده و 15 آذر ماه سال روز میلاد پیامبر اعظم و حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه ماص به ابتکار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این هفته رو هفته وحدت نام گذاشتند تا در این روز مسلمان ها ضمن شادی و سرور ذکر فضائل و اهداف اهل بیت علیهم السلام به خصوص پیامبر اکرم به امام صادق علیه السلام را داشته باشند که انشاءالله در پایان ذکر مناسبت ها تحلیلی در باره هفته وحده تقدیم فاحت همچنین روز دهم ده آذر ماه امروز سار روز شهادت فقیه مجاهد فی سبیل الله آیت الله سید حسن مدرس نماینده مردم در مجلس شورا به دست مزدوران رزاشاه جنایتکار بود که در کاشمر به شهادت رسیدن رادمردی که در سنگر مجلس شورا با صدای رسا حق میگفت و در برابر شاه خائن و اربابان او تمام قدر و یک تنه میستاد و از حق مردم خود دفاع میکرد و همین مناسبت این روز را روز مجلس نامیده انتا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصفی به اون قهرمان عرصه مجلس از حقوق ملت خودشون دفاع کنند در برابر مستکبران بیستان این روز را به رئیس محترم و نمایندگان محترم مجلس تبریک بگیم و برای آنها آرزوی موفقیت محققیت داریم با بعد نظارتی خودشون رو در ابعادی که به آنها مربوط هست بیشتر کنند. مناسبت دوم شنبه 11 آزد ماه سال روز رهلت فقیه عارف حضرت آیت الله العظمه بهاد دینیست که به بیت شریف و شاگردان و ارادتمندان شخصیت بزرگ تسبیت ارز میکنیم سوم روز یک شنبه دوازده آذرما روز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست این سند پر افتخار سمره تلاش فقها. ها و اندیشمندان اسلام شناس و دلسوز نسبت به ایران اسلامی است که در دوازده فصل و سده یک بند اصل تنظیم شده و به همه پرسی گذاشته شد و در بالایی بالای از مردم به اون رعی مثبت دادن همچنین دوازده آذرما روز جهانی معلولان نام گرفته تا در, در این روز حقوق این عزیزان دفاع بشه ازش و مسئولان نسبت به حقوق معلولان توجه بیشتری داشته باشند. چهارم روز دوشنبه سیده حاضر ماه روز بیمه نامگذاری شده بیمه نوعی خدمت هست در زمان معین به افراد جامعه وسیله برای ایجاد امنیت آرامش مردم است، باید مطالبهات بیمه رو دسته‌ها بپرزازند تا اونها بتونن خدمت بهتر و بیشتری به مردم داشته باشند. پنجم مناسبت پنجم روز پنجشنبه 16 آذر ماه روز دانشجو نام گرفته تا در این روز دانشجویان عزیز با آگاهی و وسیرت لازم در برابر مستکبران بیستند و با صلاح علم و تخصص کشور عزیز ایران رو در طراز انقلاب اسلامی اون چنان قدرتی ببخشند که تمام اهداف شوم دشمنان نسبت به ایران ان در این عصر ناکام بماند از جناب آقای مهندس فتحا رئیس مختلف کمیته امداد امام به خاطر زحمات و خدمات خودشون و همکاران محترمشون تشکر میکنیم خدا قوت میگیم به خصوص در ارتباط با زیر زیر زدگان غرب کشور همچین بحث زکات از آموزه های قرآنی کنار نماز ذکر شده آثار و برکات زیادی برای جامعه داره که رهبر فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه ای مده زلد یامشون رو به این مناسبت و برای این اجلاس ارسال کردن ان که امت ما هم نسبت به امر زکات اهتمام فراوانی داشته باشند اما تحلیل اول پیرامون هفته وحدت است خداوند متعال درباره ارتباط طرفداران های مختلف اسلامی با یکدیگر احکام و دستوراتی دارند که از طریق اولیاء دین اون مطالب ابلاغ شده است از جمله در صحیحه عبدالله بن سنان امام صادق علیه السلام خطاب به شیعیان و پیروان خودشون توصیه میکنند که در ارتباط گیری با طرفداران سایر فقدها اسلامی کوتاهی نکنند در ایادت مریضانشون برند مردگانشون رو تشکیر کنن اگر لازم بود در دادگاه به عنوان شاهد حاضر بشن حاضر بشن در مساجد اونها همراه اونها نماز بگذارن حتی در صف اول جماعتشون حاضر بشن در روایت دیگر امام فرمود فی المصلی المصالی معهم فی اول کش شاهر سیفهو فی سبیل الله و ساعل جلد پنج صفحه سی و دو حضور در های اونها عمه ما و اهل بیت علیهم السلام نه تنها به شیعیان چنین توصیه داشتند بلکه خود اهل بیت علیهم السلام در تعامل ارتباط برقرار کردن و با طرفداران سایر مذاهب ارتباط گرفتن پیش قدم بودند مولای ما امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نامه 78 نحج البلاغه خطاب به ابوموسیا اشعری فرمایند وليس رجل فعلم احرص على جماعت امت محمد صلی الله عليه و آلیه و سلم و منی ابتغی حسد الثواب وترم کرم المعاب بدن در امت اسلام هیچ کس مانند من وجود ندارد که به وحدت امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و به اون سوالفت گرفتن اونها به همدیگر از من دلسوزتر باشه ملاحظه می این سخنان مندگار رو کسی بیان میکنه که بزرگترین حق رو بر همه مسلمون ها داره ولی مردم حق او رو ادا نکردن و جالب این است که حضرت در این نامه برای موسی اشعری میفرمایند من در این کار پاداش نیک و سرانجام شایسته رو از خدا میطلبم یعنی حضرت امیر سلام الله علیه برای حفظ وحدت امت پیامبر جز رضای خدا و پاداش الهی رو مد نظر ندارند به عبارت دیگر وستت را امیرالمومنین یک عبادت مورد پسند خدا دانند و در خطبه 176 حضرت امیر نسبت خطر تفرق افکنی از همین منظر نگاه کرده و فرمودن ان الله سبحانه لم یعط احدم بفرقه خیرا ممن ما ذوا ولا خداوند سبحان نه به گذشتگان و ندر آیندگان چیزی را با تفرق عطا نفرموده است بنابراین ما موظفیم به فرمان حضرت مولا امیر علی ابن ابیطالب طالب صلوات الله و سلامه علیه عمل کنیم تا وقتی که وجود مقدس حضرت صاحب الامر مهدی آل محمد الله فقطت ح شریف ظهور کننددونندا برورند که جا الحق و ذ بااف ان الباطل ل کا زوقات تکنیفر رو روز مشخص خواهم کرد. این تحلیل اول. تحلیل دوم پیرامون هفته بسیج هست، اواً باید دانست که بسیج یک تفکر را یک فرهنگ. یعنی بسیج فراتر از یک سازمان و اداره و نهاد است همون دوری که رهبر معظم انقلاب در دیدار بسیجیان با ایشان تفکیق کردن بین این دو تفکر بسیجی در اندیشه امام راحل که بنیانگذار این نهاد مقدس در نظام جمهوری اسلامی ایران بودن اولگویی بود که امام رحمت الله علیه از طرز تفکر و عمل کرده نبی مکرر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرفت بودند. یعنی همان تا که پیامبر در ده سال حضورشون در مدینه حکومتشون رو مردم پایه و مردم نهاد اداره کردند. امور مختلف از امنیت و فعالیت های اقتصادی و کارهای مدیریتی و جنگ و دیپلماسی و مانند اینها رو پیامبر مردم نهاد و مردم بنیان اداره کرد ما هم باید تأثی کنیم به اون عصره بزرگ به پیامبر اعظم به بیت علیه السلام بیت همین تفکر رو از قرآن گرفتن که باید امور مسلمین به دست مؤمنین انجام بشه در انقلاب اسلامی هم از ابتدا تا کنون تنها نُصۀ شفابخشی که ارزش خودشون نشون داده همین بوده اصرار مقام معظم رهبری بر حضور مردم در اداره و رفع مشکلات کشور هم بر اساس همین تفکر بسیجی است رهبر معظم انقلاب بی از اول انقلاب تا امروز هر کاری به مردم محول شده اون کار پیش رفت. هر کاری که انحصاری در اختیار مسئولان و رؤسا و مانندین ها قرار گرفته کار متوقف مانده انقلاب اسلامی بل این اساس رسالتی داره و همین تفکر و واروار صدور انقلاب به کشورهای دیگر منتقل کرده نمونهش رو در لبنان و سوریه و اراق دیدید که حرکت مردمی حرف آخر رو زد و دشمنی که تا دندان مسلح بود و قدرتها و عبر قدرتها از او حمایت میکردند. به ازن خدا با یک فرمانده بسیجی حاج قاسم سلیمانی ریشه اونها آره رو از نظر نظامی در منطقه قطع کرد اطلاع بعدی درباره انتقاد مراجع تقلید از ورود زنان به ورزشگاه هاست مراجع بزرگوار ما سخنشون اینه که در دولت قبل مسئله حضور زنها در ورزشگاه ها مطرح شد و مراجع و رهبر انقلاب به اون مخالفت کردند. چرا باید مجددن این ترح قصاد انگیز بشه؟ براش آین نامه بخوان تصدیب کنن اونها می فساد ناشی از این گونه مسائل با آین نامه حل نمیشه. در این کشور مشکلات اساسی فراوانی پیشی روی مردم و مردم مطالبه می کنن از دولت که به این مشکلات اساسی بپردازن امیدواریم که دولت به سخنان دلسوزان جامعه توجه کنه خارجی مسائل از اخبار یمن رو داریم و همچنین از بحرین اخباری که میرسد هاکی از آن است که وضع سلامتی آیت الله عیسی قاسم این عالم مجاهد بسیار نگران کننده است منزله این عالم بزرگوار چند ماهی است که در محاصره نظامی است ایشان به طور جدی در خطر قرار گرفته و دولت بحرین اجازه انتقال ایشان رو به بیمارستان نمیده دولت بحرین مسئول هر گونه اتفاقی است که برای این شخصیت دلسوز و مردمین بیفته امیدواریم که نهادها و تشکیلاتی که در دنیا با عنوان دفاع از حقوق مردم و همچنین دولت‌های منطقه به وظیفه انسانی خودشون در این مورد و همچنین نسبت به مردم مذلوم یمن عمل کنن پروردگار را شر کفار و منافقین و مشرکین را به خودشان بازگردان مسلمین جهان را بر دشمنانشان پیروز بگردان بر عمر و اطقدار و عزت نظام و رهبر انقلاب بی افضاید. حیات و مرگ ما را حیات و مرگ اهل ریت اسمت قرار بده روح محتحر امام عربار محتحر شهیدان مراجع مازین گذشتگان از این جمع به خصوص شهدای مظلوم حرم قسمت می با اولیاءت محشور بفرما مریزان اسلام جانبازان عزیز شفاق و سب مرحمت بفرما باران رحمتت رو برمان نازل و ما شوق گذار نماد فات قرار بده. اللهم اغفر المؤمنين و المؤمنات والMuslimین و المسلمات الأحياء منهم والأمبات. عوض بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العаст إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعمل الصالحات وتباسوا بالحق وتباسوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.